سطر یازدهم: ذهن نیمه خداگاه حلقه پیوند دهنده، گام دهم: به سمت ثروت، ذهن نیمه خداگاه ذهن نیمه خداگاه، میدانی از نیروی خداگاهی است که در آن هر انگیزه فکری که از طریق حواس پنجگانه به ذهن عینی میرسد، طبقه بندی و ثبت میشود. همانطور که نامه ها از یک فایل خارج میشوند، افکار به خاطر فراخانده می شوند یا کنار گذاشته می شوند ذهن نیمه خداگاه افکار یا برداشت های حسی را صرف نظر از ماهیتشان دریافت یا بایگانی می کند می توانید هر برنامه، فکر یا هدفی را که می خواهید به معادل فیزیکی یا پولیش تبدیل کنید به صورت اختیاری در ذهن نیمه خداگاهتان بکارید ذهن نیمه خداگاه شبان روز کار می کند شما نمیتوانید ذهن نیم خداگاهتان را کاملا کنترل کنید ولی به صورت اختیاری میتوانید هر برنامه خواسته یا هدفی را که میخواهید به شکل عینی تبدیل کنید به این ذهن تحویل دهید. دستور العملهای استفاده از ذهن نیمه خداگاه را دوباره در فصل خود تلقینی بخوانید. شواهد فراوانی از این باور حمایت میکنند کنند که ذهن نیم خداگاه رابطه بین ذهن محدود بشر و هوش نامحدود است میانجیست که فرد از طریق آن از هوش نامحدود استفاده می کند. نتایج کار ذهن نیم خداگاه عظیم و غیر قابل بینی می باشند آنها باعث می شوند فرد بخت زده شود سیزده اصل این کتاب محرکایی هستند که با آنها این توانایی را کسب می کنید که به ذهن نیمه خداگاهتان دسترسی پیدا کنید و آن را تحت تأثیر قرار دهید اگر با اولین تلاش نمی توانید این کار را انجام دهید، معیوس نشوید به یاد داشته باشید ذهن نیمه خداگاه را با دستورالعمل هایی که در فصل موصوم به ایمان ارائه شده اند می به صورت اختیاری و فقط از طریق عادت هدایت کرد شاید هنوز وقت نداشته اید به باور غالب برسید صبر و پشتکار داشته باشید عبارات فراوانی از جملاتی که در فصلهای ایمان و خود تلقینی ذکر شدهاند در اینجا تکرار خواهد شد به یاد داشته باشید ذهن نیمه خداگاهتان چه کاری برای تحت تاثیر قرار دادن آن انجام بدهید و یا ندهید به صورت داوطلبانه عمل می کند. این طبیعتا به این معناست که فکر ترس و فقر و ی افکار منفی به عنوان تکانه هایی برای ذهن نیمه خداگاهتان عمل می کند مگر اینکه شما بر این تکانه ها مسلط شوید و غذای دلپذیری به ذهن نیمه خداگاهتان بدهید تا از آن تغذیه کند ذهن نیمه خداگاه بیکار نخواهد ماند اگر شما از کاشتن میلهای خود در ذهن نیمه خداگاهتان باز بمانید بخش ناخداگاه ذهن از افکاری که در غفلتتان به شما میرسد تقضیه خواهد کرد کافیست به یاد داشته باشید که شما روز به روز در میان همه انگیزه‌های انگیزه های فکری که بدون آگاهیتان به ذهن نیمه خداگاه میرسند زندگی میکنید بعضی از این انگیزه ها منفی و برخی از آنها مثبت هستند به قطع جریان انگیزه های منفی کمک کنید و به تاثیرگذاری اختیاری بر ذهن نیمه خداگاه از طریق انگیزه های مثبت یاری رسانید با این کار صاحب کلیدی خواهید شد که قفل ذهن نیمه خداگاه را باز خواهد کرد آن را طوری کنترل کنید که هیچ فکر نامطلوبی بر ذهن نیمه خودآگاهتان تاثیر نگذارد هر چیزی که انسان خلق میکند با یک تکانه فکری شروع می شود. انسان نمیتواند چیزی را تولید کند که آن را تصور نکرده باشد. تکانه های فکری را از طریق تخیل میتوان به برنامه تبدیل کرد. تخیل وقتی تحت کنترل باشد برای خلق برنامه ها یا اهدافی مورد استفاده قرار میگیرد که منجر به موفقیت در شغل انتخابی فرد میشود. همه ی تکانه های فکری که برای تبدیل به معادل فیزیکیشان به وجود می‌آیند و به صورت اختیاری در ذهن نیمه خداگاه کاشته می شوند، باید از مسیر تخیل عبور کنند و با ایمان ترکیب شوند. ترکیب ایمان با برنامه یا هدف به قصد ارائه به ذهن نیمه خداگاه فقط از طریق تخیل انجام می شوند. مشاهده خواهید کرد استفاده اختیاری از ذهن نیمه خداگاه مستلزم هماهنگی و کاربرد برده همه این اصول است. الا ویلر ویلکاکس وقتی شعر زیر را سرود شواهدی در باب شناخت خود از قدرت ذهن نیمه خداگاه ارائه داد. شما هرگز نمی توانید بگویید یک فکر در به ارمغان آوردن تنفر یا عشق چه کار خواهد کرد؟ چون فکرها شی هستند و بالهاگشان چابکتر از کبوتران نامه است. آنها از قانون جهان پیروی می کنند. هر چیزی، چیزی از نوع خود خلق می کند. آنها شتاب می گیرند تا آنچه از ذهنتان خارج می شود را دوباره به ذهنتان بازگردانند. خانم ویکلاکس این واقعیت را درک کرد که افکاری که از ذهن خود خارج می شوند نیز امیغن در ذهن نیم خداگاه فرد ریشه دارند و به عنوان آهنربا، الگو یا نقشه ای عمل می که ذهن نیمه خداگاه تحت تاثیر آن قرار می گیرد و در عین حال آنها را به معادل فیزیکیشان تبدیل می کنن. افکار واقعا شی هستند چون هر شی از مادهی به شکل انرژی فکری شروع می شود. احساس مثبت را به خدمت بگیرید ذهن نیمه خداگاه بیشتر نسبت به تاثیر تکانه های فکری آسیب پذیر است که با احساس حیجان ترکیب می شوند نه با تکانه های فکری که صرفاً در بخش تعقل ذهن وجود دارند شواهد فراوانی در حمایت از این نظریه وجود دارند که فقط افکار حیجانی شده تأثیری عملی بر روی ذهن نیمه خداگاه دارند این یک واقعیت است که هیجان یا احساس بر اکثر افراد حاکم است اگر این سخن صحیح است که ذهن نیمه خداگاه سریعتر به انگیزه های فکری که به خوبی با حیجان ترکیب می شوند پاسخ می‌دهد و با آمادگی بیشتر تحت تأثیر این انگیزه ها قرار می گیرد، ضرورت دارد که با حیجانات مهمتر آشنا شد. هفت حیجان مثبت اصلی و هفت حیجان منفی اصلی وجود دارد. حیجانات منفی خودشان را ناخداگاه همراه با تکانه های فکری می کنند. این همراهی ورود آنها به ذهن نیمه خداگاه را تضمین می‌کند. هیجانات مثبت باید از طریق اصل خود تلقینی به تکانه‌های فکری تزریق شوند که فرد دوست دارد آنها را به ذهن نیمه خداگاه تحویل دهد. دستورالعمل‌های مربوط در فصل خود تلقینی آمده است. این هیجانات یا تکانه‌های احساسی را می‌توان به مایه خمیر یک قرص نان تشبیه کرد. آنها کاتالیزور فکر هستند که انگیزه های فکری را از حالت انفعالی به حالت فعال تبدیل می کنند. انگیزه های فکری که به خوبی با هیجان ترکیب شده با آمادگی بیشتری صورت عمل به خود می گیرند تا انگیزه های فکری که در عقل بی احساس ریشه دارند. اکنون کاملا آماده می شوید تا مخاطب درونی ذهن نیمه خداگاهتان را تحت تاثیر قرار دهید. ضرورت دارد که روش نزدیک شدن به این مخاطب درونی را درک کنید. باید به زبان آن صحبت کنید و گنه به شما توجه نخواهد کرد. این مخاطب زبان هیجانی یا احساسی را بهتر از هر زبان دیگری درک خواهد کرد. بنابراین بیایید در اینجا هفت هیجان اصلی مثبت و هفت هیجان اصلی منفی را توصیف کنیم. تا وقتی به ذهن نیمه خداگاهتان دستور عمل میدهید، از هیجانات مثبت استفاده و از هیجانات منفی اجتناب کنید. هفت هیجان اصلی مثبت. یک هیجان میل. دو هیجان ایمان. سه هیجان عشق. چهار هیجان آمیزش جنسی. پنج هیجان اشتیاق. شش هیجان احساس رومانتیک هفت هیجان امید هیجانات مثبت دیگری هم هست اما اینها قویترین و پرکاربردترین ترین هیجانات در تلاش خلاقانه هستند بر این هفت هیجان مسلط شوید تا هیجانات مثبت دیگر وقتی به آنها نیاز دارید گوش به فرمانتان باشند به یاد داشته باشید فقط از طریق استفاده میتوان بر آنها مسلط شد بر این هفت حیجان که فقط از طریق استفاده می توان بر آنها مسلط شد تسلط یابید تا هیجانات مثبت دیگر وقتی به آنها نیاز دارید گوش به فرمانتان باشند. به یاد داشته باشید که شما کتابی را مطالعه می کنید که هدف آن این است که با پرکردن ذهنتان با هیجانات مثبت به شما کمک می کند ثروت باور شوید. با پرکردن ذهن با هیجانات منفی نمی توان ثروت باور شد. 7 هیجان اصلی منفی 1 هیجان ترس 2 هیجان حسادت 3 هیجان نفرت 4 هیجان انتقام 5 هیجان حرص 6 هیجان خرافه پرستی 7 هیجان خشم هیجانات مثبت و منفی نمی‌توانند ذهن را به طور همزمان مشغول کنند یکی از آنها باید غالب باشد. مسئولیت شماست که حواستان باشد حتما هیجانات مثبت تاثیر غالب روی ذهنتان بگذارند. قانون عادت به شما کمک خواهد کرد عادت کنید هیجانات مثبت را به گیرید و از آنها استفاده کنید. آنها بالاخره کاملا بر ذهنتان غالب خواهند شد به طوری که هیجانات منفی نتوانند وارد ذهنتان شوند. فقط با پیروی دقیق و مستمر از این دستور ها می توانید بر ذهن نیمه خداگاهتان تسلط یابید. وجود یک عامل منفی در ذهن نیمه خداگاهتان کافی است تا شانس استفاده سازنده از ذهن نیمه خداگاهتان را نابود کند. دعا اگر مشادگر باشید باید توجه کرده باشید که اکثر افراد فقط بعد از اینکه همه راه های دیگر به شکست انجامید، به دعا متوسط میشوند. واقعیت هم این است که بسیاری از کسانی که دعا می کنند فقط بعد از اینکه همه راه های دیگر به شکست انجامید دعا می کنند و با ذهنی پر از حیجان ترس و تردید دست به دعا برمیآورند. به همین ترتیب ذهن نامحدود این حیجانات را درک می کند و بر اساس آن عمل می کند. دعا گاهی اجابت می شود. اگر تجربه ای اجابت دعایتان را داشته اید به سراغ حافظهتان بروید و حالت واقعی ذهنتان را به یاد آورید. یعنی زمانی را به یاد بیاورید که داشتید دعا می کردید. اکنون آن می کنید که نظر که در اینجا توصیف می شود چیزی بیش از یک نظریه است. زمانی فرا خواهد رسید که مدارس و مؤسسات و آموزشی کشور علم دعا کردن را تدریس خواهند کرد. در آن موقع دعا شاید یک علم باشد. یا به یک علم تقلیل یابد وقتی این زمان فرا برسد دیگر هیچ کس در حالت ترس به عالم کائنات نزدیک نخواهد شد چون دیگر هیجانی به نام ترس وجود نخواهد داشت نادانی خرافه و تعالیم غلط ناپدید خواهند شد و انسان به عنوان کودک هوش نامحدود به وضعیت راستین خود خواهد رسید کمتر کسانی هستند که در حال حاضر به این نعمت رسیدهاند اگر اعتقاد دارید این پیشگویی بسیار باورنکردنی است به عقب برگردید و نگاهی به گذشته بیاندازید. کمتر از صد سال پیش انسانها اعتقاد داشتند سائقه نشانه خشم خداوند بود و از آن میتررسیدند. حالا به مدد قدرت ایمان انسان سائقه ها را مهار کرده و آن را به سمت چرخ صنعت سوق داده. خیلی کمتر از صد سال پیش انسان اعتقاد داشتند، فضای بین سیاره ها چیزی نیست جز یک خلأ بزرگ حالا به مدد قدرت ایمان انسانها ها می دانند فضای بین سیاره ها نه تنها مرده یا خلأ نیست بلکه میتواند حامل امواجی باشد که میتوان از طریق آنها هر چیزی را مخابره کرد و انسان را با هوش بی نهایت کائنات پیوند داد هزینه ارتباط چیزی نیست جز صبر ایمان پشتکار، شناخت و میل صادقانه به ارتباط. فقط خود فرد است که می تواند این مسیر را طی کند. دعای دستمزدی ارزشی ندارد. هوش نامحدود به صورت نیابتی برای کسی کار نمی کند. یا خودتان می روید یا هیچ وقت ارتباط برقرار نمی کند